شاید بشید حسرت رو به انواعی بیان کرد اگر حضرت می فرمد که حسرت بزما معلوم می شه حسرت صحرا یا حسرت بستایی هم هست مثلا مثل پیرمردی که حسرت جوانی رو بود که یک کاش در جوانی توجه داشتم و از نیرو و بنیه جوانی بهتر استفاده می کردم خب این پیلی مرد داره حسرت می کنه اما حسرت عزمانی داره. این حسرتی است که طبیعتا نعمتی مفبود شده بدون احتیال هم بوده گوزشت زمان حالا حسرت میکره که ای کاش از زمان جوانی که اصحابم قدرت جسمی فکر و قدرت تبکرم سرامت بود برای من بیشتر از این نعمت ها استفاده میکردم اما گوزشت زمان و طبیعت این عالم این هستش که نعمتهای مدتی طور داره معمولاً کسایی که تا قبل از چهل سالگی بار خودشون رو ببندن دیگه بعد از چهل سالگی حسات نمی کنن حالا چه در کار درسی باشن یا کار تجاری باشن معمولاً انسان تا چهل سالگی میتونه تونه پراگری خوبی داشته باشه بزرگت جسمی خوبی داشته باشه احساب و روانش به حدی هست که میتونه از افته کارهای خودش به خوبی بر بیاد افراد که تا سن چهل سالگی معمولا دقت دارن و خواسته های دلشون رو کنار میذارن به عقلشون عمل میکنن. افراد محفظی هن. بعد دیگه بعد از چهل سالگی از مایه میکنن اینا معمولا حسراتی نمی برن از گذر اقوم به شاید این حسرات حسرات کوچک باشه حسرات سغرار باشه در مقابل از ما یه حس هم حالا حسرات مسلم گستا بگیریم که در بعد از مرگ. داریم این در قرآن هست رب برجعونی لعلی عمل و صالح ها میتونستم برگردم و در دنیا عمل صالح و عمل نیکو انجام میدادم اون عملی که باید انجام میدادم و بهتر از اون چه عمل کردم عمل میکردم اونا رو خدا من رو بر میگردون و به جا میوردن. اما خوب دیگه مرگ سراغ اومده و برگشت نشاید این یه حسرته این حسات سنگینیه اما شاید حسرته عظما نباشه بگه یه سری هستش که در گفته ها در آیات قرآن در احادیث اهل بیت و سلام است خیلی توصیف شدید میشه ازش مثل اونجایی که جزا رو دارن معلوم میکنن روز بیامت یه دیه اصد بکنن این کاش عمل بهتر انجام میدادیم جایدامون در بهشت بالاتر بود خب یه حساتیست یه دل حساتشون به حدی هستش که انگشتان خود رو میگذم و حسات میکنن ای کاش ما اون اعمال ناشایست رو انجام نیمیدادیم که الان در قیامت روزگار جزا برامون آتش باشه آتشی که حرارتش به حدی هستش که خودش رو میخوره آتش معمولا روشنایی داره و اگر آتش شدت داشته باشه مثل این کره های صنعتی اینقدر حرارتش بالاست که تاریکی محض درونش در این حال که شدت حرارت بالاست اما روشنایی نداره چرا که روشنایی رو هم شدت حرارت میخوره، و میسوزنه در روایت داره که شدت آتش جهنم به حدیث که وقتی افراد رو جهنمی ها رو از او در و مورد شفاعت قرار میگیره به یادش نمیذارن بمونه که چه مشکل و چه سختی رو درش بوده در بعض از اوایات داره توصیح میکنه آتش جهنم رو میفرمند که بالاترین آتش دنیا رو وقتی برای جهنمی ها قرار میدن اون آتش مزابی که از آتش بشان ها میاد و همثال اونها وقتی او رو از آتش جهنم خلاس میکنن به درون شدیدترین ترین های و حلالت های دنیای قرار میدن نفس راحت میکشه انقدر براش متفاوت هست اونهایی که خطاکار بودن و جاشون در قیامت جهنم هست اونها حسرتشون حضرت حسات عزمه هست بزرگترین حسرت ها هست حسرت از اینکه ما وقت داشتیم و توان داشتیم که عمل صالح انجام بدیم اما مخالفت کردیم، مخالفت فرمان خدا کردیم. حالا مؤمنا کارا او کافر. چه کفاری که مخالفت میکنن، چه مؤمنینی که مؤمن شناسامه هستن. به ظاهر پیرو اسلامن، به ظاهر پیرو علی اولاد علی علی هستند هستن، اما در عمل مخالف فرامین خدا و اراده خدا عمل میکنند. اینها در پیامد اینقدر صدمی جزاشون زیاد هست که حسرت و دارن ای کاش ما اینگونه عمل نمی کردیم و بالفت نمی تا آقابت اون به جزای شهر و جهنم این چینیدی